قصه دیدن خلیفه لیلی را گفت لیلی را خلیفه کان تو بی کس تو مجنون شد پریشان و قوی از دیگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی هر که بیدار است او در خواب تر هست بیداریش از خوابش بتر چون به حق بیدار نبوت جان ما هست بیداری چو در بندان ما. جان همه روز از لگت کوب خیال و زیان و سود و از خوف زبان نی صفا می ماندش نی لطف و فر نی به سوی آسمان راه سفر گفتان باشد که او از هر خیال دارد و میدو کند با او مغال دیو را چون هور بیند او به خواب پس ده شهوت ریزد او با دیو آب چون که تخم نسل را در شور ریخت او به خیش آمد خیال از وی گریخت زعف سر بیند از آنو تن پلید آه از آن نقش پدید ناپدید، مرغ بر بالا و زیران سایش میدود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی سیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود، بیخبر کن اکس آن مرغ هواست، بیخبر که اصل آن سایه کجاست، تیر اندازد به سوی سایه و ترکشش خالی شود از جست و جستجو ترکش عمرش تهی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت سایه یزدان چو باشد دایش وارهاند از خیال و سایهش سایه یزدان بود بنده خدا مرده او زین عالم و زنده خدا دامن او گیر و زوتر بی گمان تا در دامن آخر زمان کیف مدذ ظلن نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست اندر این وادی مرا بی این دلیل لا احب بل آفلین چون خلیل روز سایه آفتابی را بیاب دامن شه شمس تبریزی بتاب رهندانی جانب این سور و ارس از یا الهق حسام الدین بپرس ور حسد گیرد تو را در ره گلو در حسد ابلیس را باشد قلو. کوز آدم ننگ دارد از حسد، با سعادت جنگ دارد از حسد. ای خنک، آن کش حسد هم راه نیست، اغبیز این سعبتر در راه نیست. این جسد خانه حسد آمد بدان، از حسد آلوده باشد خاندان، گر جسد خانه حسد باشد، ولی که آن جسد را پاک کرد الله نیک تحرابیتی بیان پاکی است گنج نور است در تلسمش خاکی است چون کنی بر بی جسد مکر و حسد زان حسد دل را سیاهی ها رسد خاک شو مردان حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را هم چون ما